شب یلدای امسال دوره همی آخرین شب پاییزی سال 94 با فرشید منافی از رادیو فردا دوشنده سی آزر شب یلدا با رادیو فردا نوه شب تا نیمه شب از راه فردا یه روز بهتر بلک هوا دارته چون بلدی بخندی با چشم دل به بازیم با دل به بندیم <موسیقی> اشما که دل به سبز پیچیه توی دنیا از اوج موج شادی تا فردا دشگاه به سبز بیچید توی دنیا از اوج موج شادی تا فردا سلام به همگی حالا احوالتون چطوره من فرشید منافی اینجا رادیو پاس یک هفته دیگه یک رادیو پاس فردا یه دیگه با شما خانم آقای این دختر خانم آقا پسرا شاعرمون این هفته چهار تا شعر سروده خیلی زحمت کشته چهار تا شعر سروده برای شب موضوع شب که موضوع این هفته ماست ببینید به چه ماهی شعر سروده به چه باربتی ایشون درباره تفریحات شبانه سرودند که شب, شب شب شعر و شوره هر جا میرم یه جوره تفریحات شبانه ماشالله اینجا جوره بعد ایشون در مورد یکی از های دلهور آور زندگی یعنی شب امتحان هم گفتن که این شبی که میگم شب نیست نیشش کم از اغرب نیست امتحان دارم به خدا انفجار این طب نیست بعد اونایی که از شب همجی علکی میترسن هم از تیرس شاعر ما بیرون نموندن میفرمایند که شب بود بیابان بود زمستان بود قلبم تو یک کفشم شتانبان بود از تاریکی میترسم آخه من تو تاریکی لولو فراوان بود و حالا نوبت شب یلده است البته خب به مناسبت شب یلده شاعرمون که قوقع کرده ایشالا هم همون, همون, همون شب یلده نتیجه شو به اتفاق میشنویم حتی شاید شما بتونیم ببینین ولی فیلن همینجوری چون موتور شعرگویش روشن شده بود گفته که امشب شب یلده آجیلم رو میخوام آجیلم رو که خوردم فامیلم رو میخوام هندونه بغاچ بابا جون چرا منتظری سیب و انار و موز و نارگیلم رو نارگیلم بله کلی شعر دیگه خیلی اصلا زحمت کشیده این هفته شاعرمون با تشکر از شاعرمون تنرا... تران های شبدار تران سرراو و خواننده ایرانی رو مورد هدف قرار داده این هفته این هفته با توجه به اینکه قرار ما شب گردان نه به مدتی یک ساعت نه دو ساعت دو ساعت که سه ساعت براتون به صورت ویژه بیایم موضوع بنابرم گذاشتیم شب تا همان اون اینشالله آخر هفته دیگه شب زده بشیم بره پیکارش به همین دلیل هم از همه شما. و وابستگان نسبی و سببی و کسبی درجه یک درجه دو سه چهار الی آخر دعوت میکنیم سر ساعت نه شب همون جای همیشگی یعنی همین جای همیشگی حاضر باشید با هم میخوایم بریم شب بازی به به چه شود چه شب تو شبی بشه این هفته خوبین خوشین سلامتین، خوشحالین، خبر جدیدین الان گفتم نشنیدین جدیدین دیگه گفتیم دیگه پروموشن پخش کردیم آقا اصلا اینترنت هم نمیان شما یعنی یه گایی به صفحه های ما تو فیسبوک اینستاگرام اینا سر بزنین این دیگه. کانال تلگرام هم که داریم دیگه الهی نداره من یه بار دیگه خیلی با دقت و دقیق میگم بهتون یادتونه هی میگفتین فریضه منافی از زیر کار در هم رو منتظر نامه ام تعقیب توقی بخوره برنامه رو تعطیل کنه به پیچونه اونام بر مرخصی و اینا یادتون اومد حالا هم میخوام خدمت رو ارز کنم که الان بازم به توقی خورده و مناسبت شب یلدا ما دوشنبه برنامه جان نداریم خیر دوشنبه به جای یک ساعت سه ساعت برنامه داریم بزن دست قشنگر رو اینه اینه بله فرشت منافی اگه از اونور میپیچونه از اینورم گه برعکس میپیچونه بله خلاصه دوشنبه میخوایم توی بلندترین شب سال بلندترین برنامه سال رو براتون اجرا کنیم دیگه از الان آماده باشین خودتون گرم کنین برای ماراتون شب چله رادیو پاسردا حالا باز بریم بگین فرشید منافی برای بچهای پاسردا زیر کار در رو میپیچونن و این حرفا دیگه کلا خودمون رو گذاشتیم طبق در طبق اخلاص دیگه سه ساعت برنامه شوخی نیستا جهاد پاسردایی محسوب میشه 3 ساعت برنامه حالا فعلا در همین حد گفتم اطلاع رسانی کنم در جریان باشین تا بعد اما حالا از فکر ویژه برنامه دوشنبه شب یلدا بیایم بیرون بریم سراغ برنامه امروز خودمون حواسان اینجا باشه لطفاً بله بله خب ارزم به خدمتون که این هفته از اونجا که ما به مناسبت شب دار رو داشتیم کلا گفتیم بیایم و در مورد شب با هم حرف بزنیم بله شب هم که شب میخوابییم صبح پا میشیم یا شب پایشیم صبح میخوابیم دیگه امی شب و در اولین برنامه میخوایم بریم به سراغ تفریات و وقت گذرونی های شبونه و همینطور مشاغل شبونه ببینیم ملت شب زنده دار. چه انتخاب و گزینههایی برای تفریع و وقت گذروی و شغل و فان و اینا چیکارا توی شب اصولا میخوایم نایت لایف زندگی ایرانی رو بررسی کنیم یک سلام مخصوص داریم خدمت اون گلندران شب زنده داری که ساعت 3 صبح تازه براشون سر شب محسوب میشه و عادت دارن که با سفیده صبح بخواب برن و با صدای ازون اون از خواب بیدار شن خوبی مشکلی نداریم با اینکه برعکس همه مردم زندگی میکنیم. آدم وقتی چنین کسایی رو میبینه حس میکنه دارن تو اتوبان یه طرفه میان خیلی آدمای خاصی هستن اینا خیلی اینا میگن مرد یا زن تنهای شب بله مرد بل این مردشون هست وقتی میخواستم برام اینجا حساب باز کنم بهتر از همه با همین لهجامون لامصب این خانومه بود گفت به نظرم ما حقمونه من اگر نیم نگاهی بکنم سوی بوتی مسیت است چه فرشت منازی چه بودیم منتالیا؟ بله اینم صدایی خیلی کوتاه سعی کردیم صدای دوستانی رو پخش کنیم که هفته پیش موفق نشدیم پخش کنیم دیگه گفتیم فقط همین خیلی مختصر مختصر مفید کوتاه همین فقط بریم که داشتیم فکر نکنین صداتون پخش نشد. دیگه، دیگه حالا، بپذیرید دیگه <صورت> اما خانم ها آقایی، نختر خانم آقا پسر اکبر آقای هاشمی رفسنجانی چندی پیش احتمالاً به مناسبت نزدیک شدن به شب یلدا همچنی چند تا هندونه از اون دروشتاش سووا کرد، برد، قشنگ، گذاشت زیر بغله. آقا معظمله و خلاصه از قجالت معظمله به شکل شایسته و ای اینجوری در اومد ما همه من متفقیم که رحبریمون امروز در تمام حوزه های علمی کشور بگردیم بهتر از آیت الله خامنهی ای گیرمون نمیاد من دیگه اینایی که شما میبینید و ما اینا همسنای ما هستن ما اینا همیشون تو مدرسه با هم بودیم از طلبگی هم دیگر رو میشناسیم بله افکار هم دیگر رو میدونیم باله. با هم اومدیم دیگه ما اومدیم تو سیاست اونا موندن تو عوضه و اینا فرق نمیکنه ما بهترین رو الان داریم هم با سابقه مبارزی به جهاد و هم واقعا با و هم واقعا ایشون تجربه خوبی الان داره آشنایی که داری ایشون با نیروهای داخلی بله از قدیم گفتن اکبر و آقا دعوا کنند ابله ها باور کنند تو یواخت آقای هاشمی اینجوری بگه یعنی دیگه مولا در زاقا نمیره حالا آره البته ممکنه یه عده که پدرکشتگی با معظم له دارن عنوان کنن که آقای رفسنجانی از آقا تعریف نکرده خاصه از وضعیت حوزه ها انتقاد کنه که یعنی ببینید حوزه به چه روزی افتاده که دیگه بهتر از آقای خامنه ای توش پیدا نمیشه که البته خب مشخص این حرفا مغرضانه است قطعا منظور اکبرجان همچی چیزی نبوده برچک برچک ما امیدواریم که آقا بالاخره با این هندونه های پیشکشی آقای هاشمی شب یلدا خوب و مفصلی برگزار کنه. و خوده ایشون هم دعوت کنن و تا صبح بشینن دور کرسی و خاطرات حوزه رو مرور کنن و گل بگن و گل بشنفن موسیقی <تصفح> خیلی در شما علاقه من و شما خیلی خیلی دوست دارم اینجا هواش نیم آب‌دریه، قوقدا. این تالن نیامده. ولی خیلی ممنونم، پس کورگام می‌که هوا همچین خوبه. مثل سلام فرشید جان اول از همه گفتم یه گزارشه هواشناسی بذافم هوا به بفرمید. شدت سرد میزان غلظت آلاینده ها هم که از 170 80 تا رفت بالا یه خبر خوشم بدم به همه محصلا فردا و پس فردا تهران همه مدارسش تعطیل شد عامل هستم قرون از تهران جان بله قدیم ما برف می اومد همه جا یادت سفید میشد ما کلی ذوق می کردیم مدرسه ها ممکنه ممکن بود تعطیل بشه الان دیگه عوض شده مه دود همه جا رو میگیره همه جا دست سیاه میشه بچه مرزی ها زوغ که تعطیل میشن این هم یه جورشه دیگه بله امروز توی اسفهان تبریز غم عراق و به خصوص توی تهران هوا فقط یک درجه از هوای اتاقهای گاز اردوگاه آشوویتز تمیستر بود و همین باعث شد که خیلی از مدارس به قول همین آقا حامد که گفتن امروز و احتمالا فردا تعطیل باشن ممکن ممکنه حالا این تعطیلی بیشتر هم ادامه داشته باشه اینه که درسته ادارات و سازمان ها و شرکت ها تعطیل نیستن اما اگه ما جای شما بودیم یک دو روز دیگه غیبت و کسی کار می‌خوردیم ولی تو این هوا خونه بیرون نمیمدیم آقا واقعاً چه کاری آخه من نمی‌دونم این چیه بعد اصلاً چه کاری شما دارید که می‌تونه انقدر مهم باشه که کسی ترجیح بده توی این همه هوای بخواد تنفس کنه با به خدا ما عکساشم می‌بینیم نفسمون می‌گیره به surf کردن میافتیم شما چه اونجا خونه می... بیرون نفس من نمیدونم. امیدواریم به طبیعت یک باد رحمتی به سمت تهران و این شهرهای بزرگ صادر کنه یکم یک کم کوچشونو بلکه از این آلودگی‌ها و مشکلات حل بشه. اطلاعیه بدین وسیله ستاد بمبارزه با آلودگی هوای کلانشهر هوای کل کشور به مردم عزیز و شهی پرورمان اعلام می‌دارد این ستاد آلودگی دقیا هواوی کلام شهر کشور را زیر نظر داشته و کلی اطلاعات مربوط به ریز آلودگندهای هوا را در اختیار دارد همچنین این ستاد پس از بررسی تمامی اطلاعات واصله و برگزاری صدها ساعت جلسه و مباحثه به این نتیجه رسید که برای مقابله با آلودگی هوا کاری از دستش بر نمیآید و از آهاد مردم عزیزمان خواهشمند است برای رفع آلودگی هوا دست به دعا برداشته تمیزی هوا را از ایزد منان طلب نماگند روابط عمومی ستاد مباحثه با آلودگی هوای کلان شهرهای کل, کل کشور و اما ام بریم سراغ رادیو پاس فردای شماره 950 آه. 950 تا برنامه گذشت چیکار میکنیش هر خودت همجوری دنگ و دونگ میزنی 950 تا برنامه گذشت 50 تا بیشتر برنامه نمونده امروز شنبه 28 آزر 1394 میریم سراغ مشغولیت های شبانه از انجام وظایف شغلی با چشم های پف کرده تا اشق و حال در تاریکی تمام نشدنی شب بیانی شماره 950 بدانید و آگاه باشید که بیدار نشستن در تمام طول شب و شب زندهداری و خوابیدن در طول روز اگر تبدیل به روش زندگی شما بشود به مرور کل اکوسیستم زندگی شما را تحت تاثیر قرار داده و شما به تدریج تبدیل به گونه خواهی خواهید شد که قادر به برقراری ارتباط با اعضای خانواده و افراد جامعه نخواهید بود پس اگر همین امروز فکری به حال این مشکل نکرده و تفریحات و پرسه های شبانه و کار شبانه خود را محدود نکنید همانا در این دنیا تنها مانده و در آن دنیا نیز احتمالاً با جغد و قفواج و شب پر مشهور شده گانید جمعی از خودشون هم همشه مثل جغد تا صبح بیدار نشسته ها و سال به سال دوست آشنا و فک و فامیل رو ندیده ها و خودشونم از این وضعیت اسحابی کلافه های رادیو پس دیما شب که میشد و ساعت از نه میگذشت دیگه وقته به قول معروف جیش بوس لالا ها بود و مامان بابا هم بعد از اینکه که بچه ها رو فرست دادن جیش لالا خودشون میشستن حالا یه اوشی چیزی می‌دیدن میشستن یه کم درددل می‌کردن آخرش هم شب بخیر به هم می‌گفتن یا نمی‌گفتن دیگه ساعت 11 کسی تو خونه بیدار نبود آقا تنها صدایی که تو خونه می اومد. یادتونه این صدای خاموش روشن شدن موتور یغچالا بود شب توی خانواده های ایرانی چون این مفهومی داشتنی میخوام بگم الان ساعت یک شب بچه ها تازه میرن وارد مرحله جیش میشن ساعت دو صبح میرن سراغ پدر مادر مراسم بوس رو به جا میارن و مرحله لالا هم دیگه بسته به بنیه بچه داره تا چقدر بتونه بشینه پای اینترنت بچه که این باشن بزرگتر ها که دیگه تکلیفشون مشخصه اینه که دیگه شبای این دور زمانه شبای قدیم نیست که هرچی سر جای خودش باشه بله کلا مفهوم شب که یک موقعی مترادف با استراحت و خواب و آرامش بود عوض شده شب تبدیل شده به یک مسابقه استقامت و سرسختانه علیه خواب و به قول شهرام شبتره عزیز دیگه کلن این شبها دیگه شب نیست امشب شب عزیزان خانم ها دختر خانم آقا پسر ها هر گوشه ای از دنیا مردم نایت لایف یا همون سبک زندگی شبانه مخصوص به خودشونو دارن همه جای دنیا معنی این نایت لایف چون خیلی کوتاهتره ما میگیم نایت لایف حالا همون سبک زندگی شبانه خارجی شدیم دیگه چیکار کنیم همه جای دنیا این معنی نایتلایف یه جورایی با تفریح خوشگذرونی و عشق و, و, و حال گره خورده برای همینه که انواب و اقسام دیسکوها و نایتکلابها و کازینوها وجود دارن تازه ساعت سر 11 شب به فتر کرکرار میدن بالا ملت که بیخوابی به سرشون زده میخوان کمی تفریح کنن شباشونو اونجا صبح میکنن مثل سامی سامی یعنی جغده کلا منطها توی ایران از اونجا که حکومت با خوشگذرونی و این مسائل مشکلات بنیادی داره اینه که چیزی به نام نایت لایف یا زندگی شبانه حتی در حد حت فلافل خوردن رستوران رفتن تو کافه نشستن هم وجود نداره اما این فقط یک روی سکه است ببینید از اونجا که آب همیشه رای خودش رو پیدا میکنه مردم ایران هم خب راه داری و خوشگذرونی رو همیشه پیدا میکنن و اینجوری میشه که ما هم شب‌ها تو همین ایران خودمون هم دیسکو داریم هم بار داریم هم کازینو داریم هم نایت داریم پلو همه چی از 11-12 شب تا خود صبح چیپ تا کیپ مشتری هم دارن منطقه فقط تابلا ندارن پیدا کردنشون تو نگاه اول یکم سخته ولی هست یکم فقط باید بگردین تا پیدا کنین بله از ارومیای خیلی خیلی خیلی سرد پد سلام میدم فرشت چند به همه پس سردائی ها با این صدای سرم خوردم خواستم یلدارو به همه تبریک بگم و اینکه بپرسم که آیا برنامه شب یلدات رو برای دانلود میذاری یا نه مرسی امید به همهتون خوش بگذره خدا خست. خدا نگهدارتون بعد میذاریم چرا نزوریم خواه همه برنامه رو میذاریم برنامه شبیه دارم میذاریم بعد دانلود خدا بعد نده مهی گفتم هفته پیش گفتم از رادیوهاتون فاصله بگیرین ممکنه سرمو بخورین این ها شما هم از من گرفتی حال دیگه شرمنده دیگه مراقبت بفرمایید اما دقت بفرمایید خیلی الان مسئله مهمه میخوام سوال رو بگم سوال این هفته رو بگم. این هفته یه سوال داریم برای برنامه رادیو پاسور و یه سوال هم داریم برای اونایی که شب یلدایی ان برای همه شب یلداییایی که میخوان شرکت کنن تو برنامه شب یلدامون این هفته میخوایم ازتون بپرسیم راجع به این موضوع برنامه‌مون که موضوع شبه میخوایم ببینیم میونتون با شب چجوریه یعنی از اون تیپ ادمها هستین که ساعت ده شب تخت میگیرین تا خود صبح میخوابین یا مثلا شب زنده دارین شبا مشکلی با خوابیدن نداریم مثلا چیزی چیزی نمیترسین اگه شب خوابتون نبره چی کار میکنین یا اگه شغلی دارین که شیفت شب کار میکنین برامون از تجربه شبکاریاتون برامون بگین این هفته میخواییم به ما از شبهاتون بیشتر بگین و اما سؤال ویژه شب یلدا. این هفته یه سوال ویژه شب یلدا داریم ازتون از طریق تمام راه های ارتباطی موجود میخوایم برامون از آینها و و رسومات شب یلدا در منطقه محل سکونت خودتون بگین به ما بگین اولا اهل کجا این اگه تماس میگیرین حتما بگین از کجا تماس میگیرین اهل کجا این شب چلدر رو چجوری برگزار میکنین دوست داریم صدای شما رو هم از منطقه های مختلف ایران توی ویژه برنامه بشنویم که یک نشینی یلدائی به وسعت همه ی خاک ایران داشته باشیم بس یادتون نره برامون از شب لاتون بگین زمنن شعری، زمزمهی، آهنگی، حکایتی، آوازی هم اگه تو چندتون داشتین که مناسب این شب بود بیریزین بیرون که شب چله استفاده ببریم دوره هم متشکرم. توی فیسبوک مریم گفته آخ آخ آخ مدینه گفتی و کردی کبابم والا بعضی از شباب با عشقشون اس بازی میکنن تا خوابشون ببره بعضی ها هم مثل من با چرا قوه موبایلشون نور میندازن تو چش پشه ها خب شما هم با یک اس بازی کن دیگه مریم جان ای. چرا پشه آزاری میکنی آخه خوای که پیدا کن اس بازی کن و همین کار رو میکنین می وقتی خوابی میان از خجالت تو درمیان پشه ها دیگه خودت سر شو باز میکنی وا اینجوری میشه فرزاد گفته که توی فیسبوک گفته الهی خدا نه این یک دیگه است گفته که شبا بهترین موقع برای گفتن و خندیدنه اگه دورو براتم شلوق باشه که چه بهتر اما تنهایی سر کردن شب مکافات داره من دو سال شبکاری کردم تک و تنها باور کنید از سلول انفرادی بدتره حالا دیگه درون حد دیگه نیست دیگه بابا من خودم شبکاریو رو کشیدم میفهمم چی میگی سلون انفرادی نکشیدم ولی دیگه حالا بعید میدونم اونقدر هم سخبه شد جف نده اینقدر دیگه فرزاد جان ای. دیافت فردا و پس فردا در شب یلدا با حضور اکبر سرهنگ مشکل گشا همکار گرامی حاجه های در و آغازادش نصف المومنین آقادشتی آقارشتی و علیشون آقا تعمیری آقا بیابانی دایای شرمین اموهای پونه ازده تو لاخان و بانو و کلیه بر بکس که از قلم افتادن فقط آقای منافی این همه آدم رو چطور میخوایتون استوریوی کوچیکت جا بدید <تصفيق> مرسی ممنون به حال از آگهی تبلیغاتی تون خیلی متشکرم جا میشیم دیگه یه کورسی داریم بزرگه کم مهربون میشینیم همه جا میشیم البته همه اینایی هم که شما گفتین نیستن ها فکر نکنین آگهی تبلیغاتی شخص خودتون بود حالا سعی می‌کنیم بیشتریاشون رو پیدا کنیم بیاریمشون ممنون این اینستاگرام داور کیانی گفته فرچه دلمون برا تنگ شد نمیشه برنامه نمیشه یه ساعت زودتر شروع کنی آخه من چه شنونده ای دارین لحظه شماری می‌کنم واسه یه برنامه شروع بشه حالا شما که دیگه این همه سب کردی دیگه یه ساعت هم وای می‌استی دیگه می‌گذره طاقت بیار طاقت بیار می‌گذره چی آرتیکل رایتینگ نگارش مقاله با قیمت استثنایی جان ها تبلیغات بازرگانی بودیم. نه بد می‌خوندن دیگه آقا ما حال خوندیم از فردا نه این تبلیغات هم تخلیه چاب و لوله باز کنی و فالانه غالی شویی بذاری اینا به عنوان کامنت آقا اینه دیگه از دستمون دارد خوندیم تبلیغات نذارین چه کاری آخه چرا تبلیغات میکنی؟ ارمیایی؟ ارمیایی؟ ارمیا جا؟ چی؟ نمیدونم توی اینستاگرام در حال گفته شب از بعضی جهات خوبه و از بعضی جهات نه به. یه کامنت جامع و مان یعنی خی... مانع به این میگن یعنی کل این روز روزه که ما می‌خواستیم در مورد شب حرف بزنیم کلا عمر رو توی یه جمله کوتاه بیان کردن خیلی لطفیر. دستون در نکنه متاب گفته شب خیلی خوبه اگه نبود ما کی شب بخیر میگفتیم و حالا اگه شب نبود خب به جای شب مثلا چیز میگیم حالا صبح بخیر میگفتیم به جای شب بخیر، زور بخیر میگفتیم، عصب بخیر میگفتیم. مهم زمانش که نیست که مهم مکانش دیگه. شخص شما البته خیلی مهمه. پس اگر خواستید ما در تماس باشید و از شباهاتون برای ما بگید و یا از شب یلدا تون برای ما بگید که چه میکنید و با کی هستید و دیگه چیکارا میکنید و از کجا هستید و کنار خانواده هستید یا دوستان و راجع موضوع شب هم گفتیم اگر نظری داشتید میتونید با ما در تماس باشید پسوردات radiofarda.com ایمیل ما و ماست در فیسبوک گوگل پلاس ساوندکلاود اینستاگرام میتونید ما رو فالو کنید برمون کامنت بذارید در اپلیکیشن راژیو پسفرده آیوه هاش میتونن دانلود کنن و این اپلیکیشن رو داشته باشن صدای ما رو بشنون و حتی رادیو فرده رو هم به صورت زنده از همون طریق بشنون و صداشون رو هم میتونن از همون طریق برای ما بفرستن تلفونهای ما دوسف 420 22 11 24 33 و 163 اونهایی که از داخل ایران تماس میگیرن دوسف 420 226 21 79 39 مواقعن وسط این رو باگیر که الان کاندیداهای انتخابات خبرگان مثل حسن آقا خمینی و آقای علوی وزیر اطلاعات رفتن ثبت نام کردن امروز خبر رسید آقای قرازی کاندیدای خوشحال سابق ریاست جمهوری هم رفته برای انتخابات قبرگان ثبت نام کرده قبل از ثبت نامم ایشون اینجوری گفتن کسی که میخواد در شرکت کنه حتما نباید روحانی باشه من همچون چون از 60 سال به عمل کردم موقعیتی پیدا شده میریم امتحان میدی بله ظاهرا تو نظام از هر کسی بر حال به تناسب توانایی‌هاش استفاده می‌کنن عزیزان دیدن که انتخابات خبرگان متوجه به های جناهای مختلف احتمال داره مثل انتخابات ریاست جمهوری خیلی توش خین و خین ریزی صورت بگیره گفتن یه بر به بعضی‌ها بگیم بیان فضا رو تلتیف کنن قرازیجانم ظاهرا نقششون تو همین مایه هاست دیگه خب چرا که نه آخر مردم و سرگرم سرگم مهم اینه که از ظرفیت‌های نظام خوب استفاده بشه که ظاهرا دارن خوب استفاده میکنن دستشون هم در نکنه دل نگرانی ما از خودتایی آدمی است که میخواهد به چشم خود شاهد پیروزی باشد آمران ملک موتی، سلام، چه خبر ها؟ من آخر هفته پیش اه. گفتم که توقیف راجب توقیف سیل مستند به من ناصر حجازی هستم صحبت کردن امروز تو خبر ها اومده بود که دادسرهای کارکنان دولت از فیلم رفع توقیف کرده علت بالاخره دقیقا معلوم شد چی بوده؟ این همون شکایت امیر هم غلنوی بوده یا چیز دیگه هم بوده؟ نه، فقط و فقط شکایت امیر قلنویی بوده که مم. ادار کرده و تو فیلم بهش لقب خائن به ناصر حجازی داده بودن عزیز. توی نامه که دادترهای کارکنان دولت به سازمان سینمایی نوشته اومده که اصلاحات فیلم صورت گرفته برای همین اجازه نمایش بهش دادن تمام بخشهایی که مربوط به امیر قلنویی بوده که گفته بودن باعث آزار ازیت ناصر خان شده از فیلم حذف شده می‌دونید که کنم که امشب بر از خبر رفع توقیفی از فیلم یه فرصت 89 تو سینما سپیده با حضور همسر ناصر حجازی همتون آتیلا حجازی و جمعی از فوتبالیستا به صورت رایگان فیلم به نمایش در اومده از فردام هم در گوره هنر و تجربه همچنان نمایشش ادامه داره ادامه پیدا می‌کنه بسیار خب از موسیقی چه خبر کامران از موسیقی هم بعد جون هم بگه که دیروز تو شهر کتاب مرکزی مرسوم رونمایی از آلبوم من عاشق کشمت شدم تازه ترین کار علی رزو قربانی اونجا مرسومش انجام شد تو این مراسم فردین خلطای آهنگساز آلبوم همینطور افشینه یداللهی شاغرش هم خضور داشتن و از امروز صبح آلبوم تو کل ایران پخش شد و به فروش می دست. ممنون خب ممنونم ازت کامران عزیز تا فردا با خداحافظی کنیم و میریم همین کار یک از کارهای همین آلبوم به اسم جام عاشقی رو به اتفاق میشنیم. این بار من خریدم نقد تو کشیدم ناز تو را دیدم ای ستار ستاره نشاستم بار من که دیدم واسه تو را بریدم از من و ما بگو چرا تا کی زنم بر این در بسته این بار من که خواندم رمز تو در ستاره راز نهان من بگو با من تمام ماجرا و یام صادقی <تصفيق> در جام آو شری لیلاي کمری اتمام با سلام 23 کسی شب را ضمن جلب توجه شما به خبر سفر حسن روحانی به پاریس در اواخر دیماه آینده با مروری بر سرخط مهمترین خبرهای امروز و امشب آغاز می نمابین. امکان تحتیلی مدارس تهران تا پایان هفته به دلیل آلودگی شدید هوا بر نظر کارشناسان که شانس ببین ما که مدرسه میرفتیم مثلا این آلودگی هوا هنوز اخترا نشده بود حالا این بچه‌ها رو فرت و فوت به خاطر هوا می میکنن به نظر نظاری علی مطهری مبنی بر این که سخنان رئیس قوه قضاییه در مورد غیر ممکن بودن نظارت بر رهبری یادآور قرون وسطاست و سوال ناظران که خوب علی آقا من بقیه قوانین نظام یادآور دوران پسامدرنه که این یکی فقط وسطایی باشه و بازگردانده شدن مهدی کروبی پس از انجام عمل جراحی از بیمارستان به محل حسرش و نظر فعالان عرصه هوای آزادی که باز خوبه واگاهی با وقتای عمل جراحی دیسکی سکته ای چیزی پیش میاد این بیچارها رنگ بیرونم میبینند مهمترین اناوین خبری ساعت گذشته را شامل میشدند اینک مشروع خبرها با همکارم بل با سلام بناو مقالهای که در یکی از نشریات معتبر فضانوردی آمریکا چاپ شده است از بین حاضرین در سطح کره زمین ساکنین شهر رامسر ایران و یک شهر کوچک در برزیل دارای بهترین قابلیتها برای فضانور شدن هستند این در حالی است که یکی از کارشناسان هوافضا کشور ضمن تکذیب به خبر بالا رفتن قیمت لباس فضانوردی در رامسر و تشکیل صفوف در هم همفروشه مردمی از متقاضیان رامسر شغل فضانوردی از اینکه اسفندیار رحیم مشرایی به عنوان یکی از هاالی رامسر دیگر مسئولیت در کشور ندارد ابراز خوشحالی کرده آقایه میکروفون طلارحیم مشرایی میگهبال مشرانی جدا باید روست های مشه هم بغل رامسر دیگه با بخون بله. بله بدهش با عرض پوزش از اینکه اسفندیار رحیم مشرایی به عنوان یکی از هالی رامسر دیگر مسئولیت در کشور ندارد ابراز خوشحالی کرد و گفت اگر او الان مسئول بود احتمالا این مسئله را یکی از نشانه های ظهور امام زمان در رامسر سر قلم داد می کرد. پایان مشروع اخبار بله همکنون در خدمت کارشناس امنیتی انتظاماتی اطلاعاتی برنامه جناب آقای جناب سرهنگ هستیم تا ما رو در جریامل مهمترین اناوین خبریم بله. قرار دهند جناب بفرمایید بفرمید بله بندم سلام می کنم در خدمتی هم میهنانی عزیز هستم سرهنجون میگم یه ب... جملی معروفی هستی از کودکی به هر ایرانی در مهد کودک یاد میدن می می ها... بل... توان آبابات بله؟ هر کدون آبابا آبابا بر سری ناتوان دست از او چی میگی سرای مسابقه است بزلفا بزنم دیگه بله من ده میخواستم یکم مزاح کنم فضا یکم نشاط پردا کنه ها فقط بی مزهیت هم بهتره جدی باش چیزی عجب کردم یک جمله هست که ها یاد میدن که بله, بله. شواکه ما میخوابیم آقا پولیسه ویدار این آیا واقعیت داره؟ بله که داره بله همکارانی من در گشت ها و شیفت های شبانه همیشه در خدمتی هموطنانی عزیز هستن و اتفاقا از این ب... خدمات همکاران شما باید ارس کنم بر... که من چند شب پیش سننگ ساعت دوی نسبه شب بودیدن رفته بودن بیمارستان یهو دیدم توی پارکینگ بیمارستان یه ماشین جشت نیروی انتظامی پارکین بله, بله. نگاه کردم دیدم ده تا از همکارام سلح شور شما با ماشین جشت اومدن تو پارکینگ و یه جوری خوابیده بودن توی ماشین که من توی تخت خوابم نمیتونم تجربه کنم. نه ای برای این چه توضیحی درید سر؟ ببین من به شدت تکذیب می کنم آقا واس شما میخوام از تاش میشی از هانی هم می پرهیس میگم من خودم یعنی دیدم با همین چشمام سران چی م... من از رو با پارسیدن شاهدت که گفت دمم حالا شده اس هایتی شما. چرا با نمک شدی سران؟ یعنی بیا لطفاً ببین اینا یه سران یه بنده عکس گرفتم از این اتفاق. ببینید بی من دیدم خدمتتون اتفاقا پرینت رنگی هم گرفتم بذ این فیلمت هره این اکس ها که دیگه نمک نریزی واسه من بفرما اینا, اینا اینه اینا. اینا. این شیم اینه این که معلومه از فوتوشاب هست آقا می... واقعا انکر خودت ساخت ما این اکس ها سرهنگ این, این کلمو به دیواره یکی سند به تو نشون بده بچی کار میکنی اکسم می گیریم اجا... می تو اصلا می دونی فوتوشاب چیه بله ای... می خوبم میدونم. من ده الان میتونم شما رو به دلیل توهین به نیروی انتظامی و تلاش برای فریب از خانه عمومی بازداشت کنم آقا جون سرهنگ با یکی دیگه رفته گرفته خب. سر شیفت شبانه‌اش توی پارکینگ بیمارستان خبیله و تو میخواین منو بازداشت کنی بله خب اینا آخ... همش اشفتر و کز اصلا شما اون موقع شب تو بیمارستان اونم تو قسمتی پارکینگش چه کار میکرده؟ من مریض شده بودم رفته بودم بیمارستان اون موقع شب چیکار کرده بوده که مریض شده بوده گرفتاری شدی ما سر ما خانوادگی خب. شبو قبل از خواب زهرمار میخوریم میخوابیم این دفعه دیگه زهرمارش به من آقای... نصف مریض شدم دیگه عزیز م... منو دست میندازی سریع طرف کن شما موقع برای چی چی باست... مریض شده بوده چی... رفته بوده بیمارستان بادا ببینم تو از زور استفاده مکردم قلب... آقا جو سرنگ قلب آه چی آه، آه، آه. شد آقا قلبم اه... تا چپ جدی چرا اینجوری آقای، فال... تو ماشین، سارای، بود. خوش... <تصحیم> <خوش دسنگ> <خوش دسنگ> <دسنگ> ماشین, ماشین پای دیگه، آیه گشتی خال نه، روز سر دیگه، بودو. بود، خال پش باشه، باشه، بودو، آخ جون یعنی او سکولش کردم نه حد تیم ملی آدم میره کل خیابون نمیگرده دنبال پراید یشمی خال پشمی آخ جون خب دیگه منم برم از این در پشتی متواری بشم که سر همین بفهمه سر کارش گذاشتم چطوری میشه خب اصلاً اینم ندارم کسایی که خیلی به خواب وابستن و شب بیداری براشون یه کابوسه اصلا فکر کردن به اینکه یه شغلی داشته باشی که بخوای براش مثلا شب و بیدار باشی فاجعه است چون شبکاری یعنی چی یعنی موقعی که همه میرن مراسم پرفیز جیش لاله شب به خیر رو به جا میارن و همچی پتو بالاشو سفت در آغوش میگیرن که انگار دلبر جانان رو در بر گرفتن بعضیا تازه اومدن اون موقع باید سر کار بله منظورمون خیلی از مشاغل درمانی و بیمارستانی کاره مربوط به امداد و نجات و آتش نشانی و و یا خیلی از شغلای مربوط به مدیریت شهری مثل عزیزان رفتگر که رسمند شباب یعنی دیر کارشونو شروع میکنن تا صبح زود و علال خصوص اقشار کلپز جامعه و خیلی از کارهای دیگه که ساخته شدن برای شب اصولا وقتی که ما و شما صبح با چشای میده و خمیازه کشان همچی کشون کشون به سمت محل کار یا تحصیل اون میریم. بعید نیستین عزیزان رو ببینیم که دارن با چشم های پف کرده و خواب ندیده برمیگردن خونه‌هاشون تا ای خدا بخواد یه چورتی بخوابن. ولی خدایش خوابیدن تو روز یه توان خاصی میخوادا نمیدونم این خورشید لامسب چیه که همین که آقا هلوپی میزنه بیرون انگار هر چی خواب هستو مثل برف آب میکنه. حالا شما تصور کنید که این عزیزانی بندهای خدا میخوان تو این حالت با حضور درون حلقی خورشید خانوم و مهمتر از اون میزان بالای سر و صدا تو محیط اطراف بگیرن بخوابن خدایش سخته دمشون گرد و خیلی خوبه که شبا که ما میخوابیم اونا تا بیدارن و مواظبمون بمون هستن دست گلشونم در نکن. از شیفت شب و کار که میگن من یه دوستم سمیرا میافتم که پرسه داره. انقدر تو کار به شیفت شب دادن یه جای همکارش وایساده که دیگه شبا از روز تشخیص نمیده. اینطوری که شیفت نباشم شبا بیداره روزا خواب. دیروز صبح زنگ زدم بهش پر سرما توصیه پزشکی بگیرم. صداش خوابالو بود. گفتم شرمنده بیدارت کردم. گفت نه سر کارم بیمارستان. فقط میدونی که سختمه. و یک همیازهی کشداری کشید که منم خوابم گرفت حالا همین دوست شبکار روزخواب من میخواد با یه آقای دندون پزش که روز کار شب شبخواب ازدواج کنه بهش گفتم میدونی اینجوری شما هیچ وقت هم دیگر نمیبینین؟ اینه ماهو خورشید گفت ازدواج موفق یعنی همین دیگه مگه نه؟ گفتم به نظر من که تو به جای ازدواج موفق به یه خواب موفق احتیاج داری؟ فریبرز غریب، سلام سلام، سلام به هنگی فرشی جان چه خبر فریبورز توی این چند روزی که نبودیم؟ خبر زیاد و از مصاحبه مطبوعاتی پوتین رئیس جمهور روسیه شروع کنم که در مورد بلاتر با کلی تعریف و تمجید از او توی مصاحبه مطبوعاتی گفته که باید به بلاتر جایزه صلح نوبل داد. بله این آقای پوتین ظاهرا تو مصاحبه خیلی حالش مثل که جورایی بوده و خیلی خوب نبوده چون من در مورد اینکه مقامات ترکیه میخوان نمیدونم بعد کجای آمریکا رو بلیسن و اینام حرف زده بود حالا ما ازش میگذریم خانواده اینجا نشست دیگه چه خبر؟ جنسش خوب نبوده. آلو. جالبه تو این چند گذشته حدود چه نفر از مقامات بلندپایه فیفا به خاطر فساد، پولشویی، رشوه و کلی خلافهای دیگه تحت تعقیب قانونی قطع قرار گرفتن. نگران نباش فریبورز، احتمالاً واسه اونها هم یه جایزه ای در نظر میگیرند. یا خود آقای پوتین واسه شون یه هدیه سال و نو میفرسته احتمالاً. آره، آره شاید واسه کریسمس. فرشید یه خبرم بود از تکواندوی ایران محمد باقری معتمد که تو المپیک لندن یه مدال نقره با ارزش واسه ورزش تکواندو ایران گرفت. این مصاحبه گفته بعد از اینکه تو انتخابات ریاست فدراسیون با آقای پولادگر رئیس فعلی رای ندادم، مورد غضب واقع شدم و میخواد اینا رو واسه همیشه ترک کنه و بره واسه یه کشور دیگه بازی کنه. اگه اجازه بدی حرفا رو از زبون خودش بشنوی. بشنوی. من فکر می کنم واقعا عمده اصلی این قضیه برمیگرده به همون انتخابات فدراسیون. من یه دیداری هم که با داشتم که منو خواستن این گلگیشون بود که چرا مثلا شما این کارو نکردید در حق من. آقای با من تماس گرفتم گفتش که من اصلا دلم راضی نیستش که شما بری به, به مسابقات رمونیاسیال. این همه این چیزایی که گفتم واقعا بیانگیزه انگیزه شدم. خیلی با رویه من بازی کردم و میخوام برای همیشه از ایران برنم. عجب. خب بکنش رئیس فدراسیون چی بود؟ وریبورز آقای فولادگر همه حرفا رو فرشید تکذیب کرده و گفته پیراهن تیم ملی که ارث پدری نیست. حالا کدوم کشور میخواد بره این آقای باقری معتمد؟ اونطوری که تو خبرها اومده فرشید میخواد بره جمهوری آذربایجان که هم مربیش ایرانیه هم بازیکن ایرانی داره که هفته پیشم قهرمان جام جهانی شد. عجب پس ما یه تیم ملی تکواندو هم تو آذربایجان داریم که به خاطر همین مشکلات الان واسه ایران بازی نمی‌کنن احتمالاً. تقریبا همین جوری که میگی بله. بسیار ممنونم ازت فریبورز عزیز باید خدافزی کنیم تا فردا تا فردا خدا نگه دارم اما دوستان عزیز در مورد امام زمان خب چیزهای مختلفی گفتن ما هم شنیدیم اما بعضی از این چیزهای یه جوریه که رو سر آدم واقعا کلم سبز میشه داستان اینه که توی میزگرد تلویزیونی در مورد مهدویت موجی برنامه تصمیم میگیره که خودی نشون بده و می از مطالعات و دانسته های خودشو در مورد نقشه های دشمنان اسلام برای از بین بردن تشیع و مهدویت به روح میهمان برنامه بکشه گوش کنیم ببینیم چی میگه همین چندی قبل حاجو داشتم بررسی میکردم و یه ای در حد بذات موجودات خودمون دیدم که این اخبار اطلاعات داره نشون میده که حتی اینا اومدن در رابطه با کعبه که محل ظهور حضرت حجت هست اون ساختمان ابراج ال بیت رو ساختن در خیلی بسیار متول میلیاردها دلار هزینه کردن که هایی رو اونجا قرار بدن و حضرت وقتی ظهور کردن تکدیر اندازه رو اونجا مسلط بکنن و حضرت رو نشانه بگیرن یعنی واقعا اینا تو اخبار خودشون داره مطرح میشه و گفته میشه فکن مطالعات شخص ایشون شخص همین ایشون که الانش عرف میزدن یه آقای مجریه نشون داده که سعودی یه ساختمون عظیمی یه ساختمون خیلی عظیم و بزرگ در نزدیکی کعبه ساختن توی اون ساختمون گفته ایشون باز از مطالعاتشون بر اومده چند هزار میلیارد هزینه اینه ساخته شده و دوربین و تکدیر انداز مستقر کردن که وقتی آقا ظهور کردشون رو از اون ساختمون بزنه واقعا اینا چی میزنن؟ نه من موندم اینا چی میزنن؟ آقا آقا چرا باید کسایی که اصلا سنین اعتقادت شیرار قبول نداره اینقدر به ظهور حضرت مهدی ایمان داشته باشی که مثلا چون این نقشهی برای مقابله با اون بکشن چرا آخه آسمون خراش بسازه توش تکدیر انداز رو به کبه مستقر کنی یعنی واقعا من نمیدونم بیانی راه سرراستر عرضون تری برای اجرای چونی این نبوده بعد میگه اینا دارن تو اخبار خودشون اینا رو مطرح میکنن و گفته میشه فکن. عجیباً غریبا این تصرف بکن مجری اخبار داره خبرت تکمیل برجی میده که قراره از اونجا مثلا یه انداز گذاشتن که امام زمان وقتی که ظهور کرد به قط برسونه واقعاً آدم هم شاخ در میاره هم دوم یه وقت دایی. ماشین مشتی من دلی ارزون و بیمعتلی. ماشین مشتی مندلی نه بغداره نه سندلی شما من اصلا من انگاه چی؟ عاشق شب بودم که چی؟ مادر خدا بیا مردم و همش میگفت این پسر زوگ ده نیست که <تصفيق> والا زونم؟ آره دیگه عشق شبت بوده و میشه اصلا من نمیدونم داشت این آدم اصلا بدسس این انرژی رو از کدا میاره به زون شما یعنی ما از صبح تا زور که میرفتیم مدرسه تازه امزام یا کتک میخوردیم یا در و دیوار و, مدرسه و, بودیم و هم که و دلایه میکردیم مینداختیم وسط و اینه و اسب تازه بالغ میدویدیم دنبالش میخندی چرا ما زدی میگم بالا چی مدرسه تعطیل میشد باز یورتمه میامدیم تا خونه داشت یه نار میخوردیم چی دوباره تو کوته موطه ها وسط خاک و خل غلط میخوردیم تا شب بشه تازه شب هم چی می خونه میشستیم پا تلویزیون ورزش و مردم و دیدنی یا با اینا میدیدیم آخر شب هم بابا اون با تک و لگت میخوا من دیگه بعد سه آدمی زاد این زوری آخه نیست دیگه ما چی تو زایشگا مایشگا عوض شده بودیم بعد سه گوزدی زرافه چیزی بودیم لابود دیگه نگاه کن نگاه نی... از خنده پاشینایی <تصفح> که شما بهش بخنده چی زندگی ماستا حالا خدا رو شکه باعث شادی شما شده دیگه آره بابا قب خب نباشه هرچه میخواد باشه خلاصه امین همه این قصه رو گفتم بگم تی ما مرد تنهای شبیم یعنی با این خستگه مستگی که از سر کار میریم خونه تازه آخر شب که مادر بسهها و ها رو خوابوندیم خودمون فیلمون یاد و میکنه میشینیم دیگه مییم این ماحواره روشن میکنیم و این و اون کانالو تا این چشمه گرم بشه و خواب بیاد توش دیگه چی کار کنیم جونه کانال بعد نداباش ما از اوناش نیستیم که نه همین کانالای لخت پخته اینا میگه نداباشم نه اصلا از این خبرها نیست شه. ایوان میخنده دوباره یعنی هر کی نصف شب پامیشه ماهواره نگاه میکنه از این چیزا میبینه نه بابا جونم چه کانالایی میبینم نه بابی چه میدونم دیگه بی بی سی, بی بی سی و اینا دیگه قش کردی ترا دوباره با داره؟ چی میگی با برنامه نداره بی بی اون موقع؟ زونه با؟ بی خدای خوشم نمیاد از این کانال لختی مختی ها من رد میشم ازشون دیگه با بده خوب دیگه این که این, دی این چیزا چیه؟ این بهترش کدومه در ذریانی شما کدوماش بهتر این کاره ای میگم یعنی ها چی چیه؟ اولتراتی آه فرکانسشو بنویس بده حالا. بده نتونه تو میخوام گفت فش کنم بطه ها نبینه آره حالا آره شماره میدم از بزن دیگه ای با خوب نیست ولی خدایش ها آره بابا. ما فقط این نگاه میکنیم که شب خواب بیادیم از سیر به موج تو نبی کدم شب ماهی چشمه دختری گهر ستاره ها ما دختری ما شب خوی خسوی بندر نایایو او هم گم شد در تو هو دیگر نایایو جان سلام شبیه یلدا پیشو باش پیش مبارک آقا ما دو هفته پیش از سویت و ساعت یه بسه فرستادیم به دفتر رادیو فردا کلوچه فومن پیگیری کن دستت نره دیگه یه شانست آخ،, اخ اخ, آخ،, آخ. بگم آقا دم شما گرم رسید به دستمون همم هم زدیم جاتون خالی خوردیم همه و کلی حال کردیم دیگه خیلی ممنونم خیلی زحمت کشیدونا خیلی لطف کردیم به خدا اما مهدی اخوان سالس معلوم نیست البته قطاب به کدوم رهگذری گفته کجا ای ره نورد راه گم کرده بیا برگرد در این صحرا به جز مرگ و به جز هرمان کسی را آشنایی نیست بیا برگرد آخر ای غریب راه که از اینجا ره به جایی نیست شبتون خوش و مسیر زندگیتون هموار الهی خم نشی وقتی که در داد توی شونت مثل یک کول پاره تو میتونی بری از پا نیفتی دیگه این را برگشتن نداره مسیر زندگی مثل یه روده که آخر دل به دریا می سفاره اگه بالا و پایین داره اما تهش سر رسیدن موندگاره قبولش کن اگه حتی شکستی نگو هرگز امیدت از دست تو میتونی بری و پر بگیری اگه شوق رهایی تو دلت دست نگو هرگز و امیدت میر از دست نبادا وقت رفتن چند بیاری مسیر زندگی مثل یه روده که یعنی راهی جز رفتن نداری برو تا آخره دنیا سفر کن سفر کن تا دلت آروم بگیره سفر مثل یه مر هم دل نشینه حسش توی قلبت بمیره